سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز و خوب کانال هزار افسان امروز هم در خدمتتون هستم با یک قصه زیبای دیگه اسم این قصه جورینده و جورینگل هست بریم که با هم دیگه بشنویم روزگاری قصری در وسط جنگلی انبو قرار داشت که در اون پیرزنی کاملا تنها زندگی می کرد. پیرزن یک افسونگر بود. در طول روز خودش رو به شکل گربه یا جغ در می آورد اما شب که میشد به صورت زنی معمولی در میومد. اون حیوانات و پرندگان رو گور میزد و پیش خودش می آورد. بعد اونها رو میکش و میخورد. اگر جوانی فقط صد قدم با قصر فاصله داشت نمیتونست از جاش تکون بخوره. مگر اینکه پیرزن اون رو آزاد کنه. اما اگر دختری به نزدیکی های قصر می رسید، افسونگر پیر اون رو به پرندهی تبدیل می کرد و در قفصی از نی می و در یکی از اتاقهای قصر می گذاشت. اون دقیقا هفت هزار قفص با پرندگان بسیار کمیاب در قصر داشت. زمانی دوشیزهی به نام جورینده زندگی می کرد که از دیگر دختران بسیار زیباتر بود. اون با پسری جوان به نام جورینگل نامزد بود که مثل دوشیزه خوش سیما بود. بیشترین دلخوشیشون زندگی در کنار هم بود. اونها همیشه راجع به این موضوع زیاد صحبت می‌کردند. یک روز هنگام غروب برای گردش به جنگل رفتند. جورینگل گفت: مواظب باش که به قصر خیلی نزدیک نشی. یک غروب زیبا بود. خورشید تابان از بین تنه های درختان و برگ های سبز و انبوه شاخه ها میدرخشید. یک قمری روی بوته های تازه رویده به زیبایی آواز میخند. یک دفعه نگاهی به اطرافشون انداختند. کاملا گیج شده بودند و به یاد نمیآوردند از چراهی اومدند و نمیدونستند چطور باید برگردند. جورینده زیر پرتو خورشید بر زمین نشست و زاری می میکرد. جورینگل هم ناله سر میداد. هر دوتاشون خیلی غمگین بودن، انگار که مرگ در انتظارشونه. نیمی از خورشید بر فراز کوه و نیمی دیگه در پشت کوه بود که جورینگل از بین درختان دیوار قصر رو در نزدیکی خودشون دید. اون از ترس نیمه جون شده بود. جورینده ترانه سرداد. پرندگی کوچک با گلوی سرخ فام ترانه غم سر می دهد دم آدم. او برای قمری کوچک مرده می‌خواند، خاند. ترانی قمراج درد مندانه می‌خواند. جورینگل نگاهی به جورینده انداخت. اون به بلبل تبدیل شده و سرگرم ترانه خونی بود. یک جغد شب با چشمانی براق سه بار دورش پرواز کرد و سه بار ویق کرد. جورینگل نمیتونست از از جاشتکون بخوره. مثل سنگ شده بود. نمیتونست گریه کنه یا حرف بزنه یا حتی دست و پاش رو تکون بده. حالا خورشید غروب کرده بود. جغد به سمت بوته بلندی پرید. یک دفعه زنی پیر و قوزی از اون بیرون اومد. لاغر بود و پوستی زرد و چشمای بزرگ قرمز و بینی خمیده روبه به پایین نزدیک به چونش داشت. اون که با خودش حرف میزد، ولبر رو گرفت و با خودش برد. جورینگل نمیتونست حرفی بزنه و نه از جاش تکون بخوره دیگه خبری از بلبل نبود بالاخره اون زن دوباره برگشت و با صدای نخراشیده گفت شب بخیر زاکیل وقتی که ماه جوان در سبد بدرخشه زود آزاد میشی همون موقع جورینگل آزاد شد اون در برابر پیرزن زانو زد و التماس کرد که جورینده رو بهش پس بده اما افسونگر گفت که اون دیگه هرگز جرینده رو دوباره نمی‌بینه بعد از اونجا دور شد جورینگل به دنبالش فریاد زد و گریه و زاری کرد اما همه بیفایده بود با خودش فکر کرد قرار چی سرم بیاد جورینگل از اونجا دور شد و رفت تا به دهکدهی عجیب رسید در اونجا مدتی طولانی چوپانی کرد اغلب به طرف قصر میرفت اما خیلی نزدیک نمیشد بالاخره شبی در خواب دید که گلی قرمز به رنگ خون پیدا کرده که در وسطش یک مروارید زیبای بزرگ قرار داشت اون گل رو کند و با اون به قصر رفت در اونجا گل رو به هر چیزی که میزد از تلسم رها میشد به این طریق تونست جرینده رو آزاد کنه صبح که از خواب بیدار شد در کوهستان و دره در به دنبال این گلی گشت هشت روز به دنبال گلی که در خواب دیده بود جستجو کرد و صبح روز نهم گل خونفام رو پیدا کرد. در وسطش قطره شبنم بزرگ به بزرگی یک مروارید بسیار زیبا قرار داشت. اون شب و روز سفر کرد تا به قصر رسید. وقتی به صد قدمی قصر رسید توقف نکرد بلکه همچنان پیش رفت تا به دروازه قصر رسید. اون از این موفقیت خیلی خوشحال بود. گر رو بر دروازه بزرگ زد و دروازه کاملا باز شد اون پا به محوطه قصر گذاشت و سر جاش ایستاد تا آواز پرندگان را بشنوه و بالاخره شنید وارد ساختمان شد و در تالار زن افسونگر رو به همراه هفت هزار پرنده در قفصهای نیدید موقعی که چشم افسونگر به جورین گل افتاد مثل کوری آتش خشمگین شد و روش زهر و بدبوی ریخت اما نتونست قدمی به سمتش برداره جورینگل اعتنائی نکرد و به طرف قفصها رفت و آنها را وارسی کرد اما بیش از صد بلبر اونجا بود حالا چطور جرینده رو از بین بقیه ها پیدا کنه؟ در حالی که سرگرم وارسی بود متوجه شد که افسونگر پیر یواشکی قفصی رو برداشت و به طرف در تالار رفت بلافاصله دنبالش دوید و با گل به قفس و به پیرزن زد. پیرزن افسونگر قدرت جادوییش را از دست داد و جورینده در مقابلش ظاهر شد. اون از قبل هم زیباتر شده بود. بعد جورینگل گل رو به همه پرنده ها زد و اونها رو به شکل اول خودشون که دوشیزگانی زیبا بودن برگردوند. اون و جورینده به خونه برگشتند و تا آخر عمر طولانیشون با خوشبختی در کنار هم زندگی کردند این هم از قصه کوتاه جرینده و جرینگل امیدوارم لذت برده باشید روز و روزگار و شما خوش سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها هایی از غول ها و کتوله ها هایی از جادوگرها سفر به سرزمین جادویی و تلسم شده رفتن به دنیای پریان ماجراجوییی در سرزمین های زیر دریا. همه در در اینها و بیش از اینها، در کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای های افسان صوتی